سلام موسد سلام به شنونده های عزیز کانال هزار افسان. امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستم با یک داستان دیگه داستان این قسمت چوپان خیالباف چوپانی گوستفندان مرد ثروتمندی رو به چرا می برده مرد سروتمند در عوض موز چوپان به اون روغن می داده چوپان هم روغن رو در یک کوزه ای که در خونش آویزون کرده بوده ذخیره میکرده. روزی از روزها چوپان پس از غروب و آفتاب تو خونش نشسته بوده و اساشم تو دستش بوده. اون در همون حالت درباره روغنی که جمع کرده بوده فکر میکنه و به رویا میره. با خودش میگه فردا این کوزه روغن رو به بازار میبرم. و میفروشم و با پول اون گوسند ماده حاملهی میخرم. مدتی بعد گوسند میزاد. مدتی بعد همین مره بزرگ میشه و سال بعد خودش و مادرش برای دیگری میزاد. کم کم گوسفندام زیاد میشن و صاحب یه گلی بزرگ میشم بعد از اون گوسفندان این مرد سروتمند بهش پس میدم. برای خودم یه چوبام میگیرم تا گلمو به چرا ببره؟ از درآمد گله برای خودم یه قصر بزرگ میسازم قصری که با فرشای زیبا فرش میکنم. پسرم که بزرگ شد براش معلم می گیرم تا همه چیزو به اون یاد بده به اون یاد میدم که از من اطاعت کنه اگر از هم اطاعت کرد که چه خوب اگر اطاعت نکرد با همین عصا کلش می تا ادب بشه چوپان یک مرتبه متوجه میشه که همه سر و صورت و لباسش روغنی شده اون با اصاش محکم به کوزه روغن زده بود. اونقدر تو این رویا فرو رفته بود و تو رویاش سروتمند شده بوده. ثروتمند مغروری هم شده بوده. که قصری داشته و پسرش هم باید ازش اطاعت میکرده. اگه پسره اطاعت نمیکرده باید محکم میزده تو سرش و به همون محکمی که میخواسته تو پسرش بزنه میزنه به ظرف روغنش.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 نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلاش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t i نوکت b l o g f a c o m مهران دوستی .dot com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی